جریت کیسود جلد دوم فصل نهم. دیدگاه های لایت سی. استاد اک چین باستان لایت سی، پانزده سال تمام در غارها و خلوتگاه های مشرف و رود زرد در شمال چین مشغول مراقبه و عبادت بود هیچکس کس او را نمی و کسی هم چیزی در بارش نشنده بود او یکی از هزاران رهبانی ای بود که تحصیلات عادیه فیش را در مکاتب تبت به پایان برده و به لقب گشه به معنای الهی شناس گشته بود او به این نتیجه دستیده بود که شناخت و معرفت حقیقی در سکوت و خلوت طبیعت حاصل می شود او از نجیب زادگان بود. پدرش در دربار سلطنت چین به طبابت اشتغال داشت. اما خانوادهش او را فراموش کرده بودند. و او نیز از خانواده و البته از دنیا گذشته بود. این به واسطه بیعلاقگی و لاغیدی او نبود. بلکه وی تفاوتی بین خودش و دنیا قائل نمیشد. او میدانست که نفس تحتانیش مقتضای عالم وجود است و بنابراین هر دو رو به باد فراموشی سپرده بود. او با حیوانات وحشی که در غارش به نزد او می آمدند، انس گرفته بود و عشقش به سوی تمامی انسانها و کل زندگی جاری بود. او هرگز در این انزلت گزینی احساس تنهایی نمی کرد بلکه از آن آزادی که از ملاقات با استادش کسب کرد شادمان بود. استادش همواره در آتماساروف به دیدار او می و او را خرد الهی می و به سرزمین های دور پروازش میداد جایی که لایتسی می عشق لایزال سوگمات را تجربه کند یک روز شبانی در جستجوی میشه گم شدهش به طور اتفاقی به عراضی دور رودخانه زرد رسید هونوای عجیب و ریتمیک از اود را شنید این سازی بود که توسط لاماهای روحانی نواخته میشد. او به گوشهایش اعتماد نکرد. زیرا غیر ممکن بود که کسی در چنین مکان آوری زندگی کند. ابتدا این صدا او را ترساند و تصور کرد که وجودی شیطانی قصد جانش را دارد. اما بالاخره کنجکاوی بر ترسش غالب آمد و صدا را تعقیب کرد. هویی آهنروبایی او را جذب می کند خیلی زود استاد کبیر اک را دید که در غاری نشسته و غرق در مراقبه است رخ او را حاله ای از نور الهی و تقدسی غریب فرا گرفته بود ترس به تمامی از وجود آن چوپان گریخت و او به لایتسی نزدیک شد آنگاه که استاد او را لمس کرد موجی از برکت در کالبدش جریان یافت. او تمامی سوالاتش را فراموش کرد و فقط از استاد طلب برکت نمود. به زودی آوازه لایتسی قدیس در تمامی دره رود زرد پیچید و مردم گروه گروه به دیدارش می‌آمدند. آنها در عجب بودند که او چگونه زمستان‌های سرد و طاقت فرسا را سپری می‌کند. اما با نگاه به چهره‌اش احساس آرامش و شعف می‌کردند. و متوجه می شدند که این همان استاد معظم اک است که از سالها قبل به بشارتش به آنها داده شده بود او در پاسخ به سؤالی در مورد زندگیش در آن مکان چنین پاسخ داد من واقعا برکت داده شدم زیرا استاد گرانقدر اک یا ارساکابی همیشه با حضور خود نهر حکمت را بر من می گشود. من کالبد حقیر خیش را در اینجا رها کردم و با وی به سفر در آسمان کیهان‌های سوگمات می‌رفتم. در آنجا آن مستی و وجدی را که در این دنیای بدنهاد ناشناخته است تجربه می‌کردم. من تنها مجرایی برای مشیت اک هستم و چیزی را به شما می‌دهم که از طریق من جاری می‌شود و نه از خودم. شما مرا انسان کامل مینامید اما این درست نیست. پیش چشمان خدا هیچ کس و هیچ چیز کامل نیست مگر آن که در سلوک واقعتین خود در آغوش لطیف آن بیارآمد. نه من و نه شما هیچ کدام قادر به تحقق کمال در ظرف انسانی خود نیستیم. این طبقه تنگ انسانی تا قایان زندگی فیزیکی همچون لفافی روح را در چند برای خود گرفته است بایستی خوبی را فراگیرید و به تمامی هم نوعان خیش نیکی کنید با حیوانات مهربان بوده و عاشق همه مخلوقات خدا باشید من واقعا سعادتمند هستم که از ایوان کودکی هم تحت هدایت اک بودهاند. انتظاری جان فرسا لازم است تا انسان بزرگ شود و وارد زندگی اک گردد همه فکر میکنند که بایستی قبل از ورود به امور اک خود را از همه چیز توهی کنند. اما فقط یک چیز به کار می آید. این که بدانیم آن راه بهشت هست. و این مسیر حقیقت و طریقت کمال می باشد. من به جهانهای حقیقی اک پاسل شدم. به آن آنجا که موسیقی سودماد تنین انداز است. و بیتردید زیباترین ترنم است گرداب صوت خدا بخشی از وجودم شده بود نور در سپیدی خیره کننده ای مید که به ریزش برف میماند و صوت به جلاجل صدای آب در گردابی مهیب همانند بود من مضامین لطیف سوگماد را ناظر بودم و هنوز هم تا به امروز نتوانستم آنچه را که دیدم شهر کنم آن حالتی شبیه به حضور در جهانی مملو از ملاطفت و شوق بود و حالا میفهمم که چرا به آن اقیانوس عشق و رحمت میگویند؟ اصلا یاد نداشتم که چه مدت در کف سرد و نمور غار خفته بودم و نمیدانم که تا چه مدت حیوانات، خزندگان و پرندگان از کالبدم محافظت میکردند. شیر صورتم را با زبان زبرش تمیز می کرد گوزن وحشی در کنارم می آرامید تا با حرارتش اندام مرا از انجماد محفوظ دارد پرندگان و پروانگان برایم اصل و خوراک می گویی تمامی طبیعت بسیج شده بود تا مرا زنده نگه دارد بعدها فهمیدم که سوگ ماد ایشان را مأمور کرده بود تا مرا قضا و گرما بخشیده و می باشند پس از بازگشت از آن دیار مسخور کننده و اقلیم زیبایی ها متوجه شدم که سه روز و سه شب بیرون از کالبت بودم. سپس مردی کهان را دیدم که در کنار آتشی دلچسب نشسته است بیدرنگ وی را شناختم او توموگشیک استاد زبردست اک بود که به مدت هفت سال در کالبد آتما با من دیدار می کرد و با اجائب سوگماد آشنایم می نمود. این قبل از ملاقات فیزیکی ما بود اول بار که او را دیدم در ارتفاعات سلسله جبال هیمالیا و در جامعی مندرس و جنده مشغول رهنوردی بود انسان عادی تحت شرایط محیطی و گرسنگی در چنین جایی دوام نمی آورد اما توموگشیگ یک شخص معمولی نیست او همسن سن یاول ساکاوی است در مصر باستان حدوی آنها تحت هدایت یکی از اساتید قدیمی‌تر اکنکار یعنی گوپالاست بودند این به هزار سال قبل باز می‌گردد امروزه گوپالداس محافظ کتاب چهارم شریعت کی در طبقه اسیبی است و دو چلای او از رتبه بالایی در سلسله پیران وایراگی در یا یاوسکاوی به عنوان محافظ کتاب دوم شریعت کی در صدر ریاست شهر معنوی آگامدست نشسته است. و توموگسیگ در جهان هفتم یا الخلوق عهدهدار حفاظت از لوح شریعت که سوگماده است. همه چیز در گذر است: فقط سوگماد است که تغییر نمی پذیرد همه ما رو به یک مقصد سفر می کنیم و فقط راههایمان متفاوت است. این چیزی بود که توم و گشیگ قبل از اینکه در سلوک بهشتی هم سفرش کردم با من گفت. حال درک می‌کنم که تنها چیزی که ارزش دارد، خود ماد است. آن قادر بیزوال که فقط معدودی از جویندگان خدا و اساتید عک او را شناسایی کردند. نه مقامی که عالمیان او را به عنوان خدا پرستش می‌کنند. در اینجا فرازی از اون یک مراقبه کوتاه را که در حین بازگشت از عوالم بهشتی در خود یافتم بازگو می کنم. آه ای سوگ ماد راه های خود را بر من بنما مرا بر حقیقت خود راه نمایی کن و آموختم گردان من تا به عبد در هوای لطف تو باقی می مانم آه ای معشوق من آن نور هدایتگر خود را بر من بپاشان و توجه عاشقانت را از من دریق مدار که همواره اراده تو بر این بوده است که این کمترین خادمان کویت را به سوی خودت راهبری کنی هر کس که دچار پریشان حالی و یا احساس یأس در راه رسیدن به سوگماد باشد و این مراقبه را نجوا نماید مطمئنم برایش اثر بخش خواهد بود چه در حال کار باشید و چه در حال مطالعه اگر عاشق شده اید و اگر مراقبه میکنید، چنانچه همه اینها را با نیت عشق به حقیقت و یا عشق به سودماد به جای آورید آنگاه چه بدانی و چه ندانی در حال جاری نمودن مشریت اک هستید همه آنهایی که به سیمای مهانتا استاد حق در قید حیات نظر می‌کنند، از نظر معنوی شکوفا شده و تمامی مصائبشان سمت التیام به خود می‌گیرد. این عمل رشته تاری را در سر تا سر کائنات می‌کشد، که در تمامی طول خود در حال ارتعاش است آن تمامی موجودات زی شعور معنوی را لمس کرده و از تمامی جهانها میگذرد و معالاً ارتعاشات خود را به قلب سوگناد باز می بنابراین هر آن کس که با دارشان قمهای خود را التیام داده باشد متوجه می شود که چون این لحظه ای نه تنها در طول مسیر یاریگر اوست بلکه در گستره کل کیهان در حال تپش است و بر کسانی که به آن نزدیکند مدد میرساند و نتایج شگفتانگیزی حاصل می کند سودماد فقط در هیئت محانسا استاد حق در غیر حیات کالبد مادی بر خود اخذ می کند که در آگاهی انسانی به آن اک گفته می شود انسان می کیفیت خوبی و کردار نیکو را بشناسد بی کردار نیکو کاستی فزونی فوزونی و مجالی اندک برای اندوختن خوبی ها در افکار آگاهانه او باقی میماند. با دستاززمایی به خیر و شب آگاهی از افکار و عقایدش تمام لوح وجود او را فرا می گیرد. قدرتهایش زندگیش، گوشت و استخوانش در معرض عک یا آنچه که کلب او اهدا میکن قرار میگیرد. بستگی دارد که در نقش یک مجرا آگاهیش را بر چه چیزی گشوده باشد به عبارتی او همان است که می اندیشد. زیرا انسان هیچگاه تغییر نمی مگر آنکه که دیدگاه خود را تغییر دهد از لحاظ معنوی بد و خوب سلامتی زندگی و یا شرایط بشر از افکارش نشأت می و یا می توان گفت که از آگاهی ذهنی نسبت به تصوراتش سادر می کرده انسان دارای پنج حس است بینایی، بویایی، چشایی، شنوایی و لامسه اما علاوه بر همه اینها آنچه که از قرار معلوم تا به امروز شناخته نشده است حس ششم است آن وچه قابله و نقطه تمرکز تمامی نیروهای هستی و یا حضور مطلق اک که همانا حضور همیشگی منابع مساعدت معنوی در هر نیازی به حساب میآید این حس فقط زمانی فعال می شود که انسان از آن آگاهی یافته باشد و آگاهی انسانی از حالت سختی و انجماد خارج گشته باشد کالبد روشن زمیران کل کائنات است و آگاهی ایشان همه کیهان ها را شامل است و کالبد فیزیکی آنها تجلی اک در این واقعیت از هستی است عدید دید درونیشان نیز جلوه ای از حقیقت برتر و واقعیت ابدی است و کلامشان گوشه ای از حقیقت جابیدان می در اینجاست که حکمت وجود کالبد، کلام و ذهن فاش شده و ماهیت حقیقی خود را به اهتزاز در می این باش نفت شش طبقه عالم خلق که در آنها وقایع روانی و معنوی رخ میدهند مشخص می گردند. و انسانی که ایدئال و آرمان خویش را بر یک قرار داده است، آنکه فراتر از اقلیم تمایات و تجربیات شخصی فرود آمده باشد، آگاهی خویش را از مذهبه کالبدی به حقایق عمیق معنوی به منطقه نیستی که اصل همه هستهاست قلم را به درک زیبایی و اشراق بشت می می‌دهد هویت فردی یک شخص غیر غیرمعنوی محدود به تراز مادی و یا کالبد فیزیکی است لیک هویت یک انسان پیشرفته معنوی فقط طرز و تراز بیرونی او نیست بلکه عملکرد‌های روانی و معنوی او را نیز شامل می‌شود و آگاهی مرزهای کالبد فیزیکی را در هم می نوردد دوگانگی و مغایرت همواره ما روح و کالبد فیزیکی برقرار است ایتظاد زمانی که روح وارد طبقات بهشتی می گردد نیست می شود هیچ یک از راهکارهای توصیه شده از جانب بخر در شناخت چگونگی کیفیت و قدیده موجب موجر استادی بر طبیعت نمی شدند هیچ کلام و یا نامی قادر برملا نمودن اسرار عمیق طریق اک نمید باشد. خلقت از نقطه این نامعلوم آغاز شده و بنابراین بینام است مخلوقات فقط میتوانند در ماسیکسی که در دل اک وجود دارد ترسیم شوند. اسرار اک منبع پایاب و شکل دهنده تمامی بقایی است و فقط بر آنانی که از سرطره آرزوها و تعصبات شخصی در مورد آن رها شده باشند مکشوف می گردد. ولی در قالب اوقات شخص با این طرز تلقی افراسی که زندگی بیرونیش به کلی از درجه اعتبار ساابت است در زیر هجاب زواهر و پدیدهها به دنبال آن می گردد حالان که گوشهای متاسب در عک جایی ندارند اسرار و محتوای آن فقط به تجربه و پشتکار به میآیند. آیند. زوج کیفیات متضاد نماد غیر قابل حذف در تجلیات اک است. این اصل قرینگی سیمای اصلی این دنیا و کلید فهم تمامیت هستی است. همواره گفته می شود که زیبایی کاخ فقط در برابر زشتی مسکن فقرا خودنمایی می کنند. پس نیکی های انسان نیز در عرضه شرارت خود را نشان می دهند. به طور کلی مثبت و منفی بودن و نبودن، درد و لذت، خوب و بد و تمامی این کیفیات و مختصات نوعی جفت جفت ظاهر می شوند. آنها وابسته به حواسه انسانی بوده و از دیدگاه شخصی او برمیخیزند اینها در طریق اک و در شناخت صفات آن معیار محکمی به حساب نمیآیند. اکیست چیزی نمیداند و عملی را از روی امیال خودش انجام نمیدهد. او به نیروی اک اختیار تام می که از طریق او عمل نماید او به هیچ شکل و قالبی اعم از شهرت، خدمت، ثروت و قدرت اهمیتی نمیدهد و به واسطه اینکه به دنبال این تعلقات نیست، آنها می آیند آن به دنبالش میآیند. آن بدین صورت در انسان کار میکند و او را مجرای حضور قدرت آن قرار میدهند. با ایان شدن عمق غهب دریاهای من از وسعت و بیزمانی آن در عجب شدم قدرت از آن فوران می کند. به طوری که نمی آن را توحی کنید اهلی هم غیر از ماهانتا استاد حق در قید حیات نمی که قدرت اک از کجا می آید و چرا هیچگاه تمامی ندارد آن پیوسته از قلب خدا به جهان جهانها جاری است زندگی را دوام می‌بخشد و به همگان شهد بهشت را هدیه می کند. پرحرفی باعث تحلیل رفتگی و خستگی است بنابراین بهتر است که افکارتان را نزد خودتان نگاه دارید سکوت گنج است سکوت چیزی به مراتب ازشمند تر از طلابه جوینده عطا می کند. آن او را گنجینه‌های بهشتی می‌بخشد که با زر و سیم قابل تخمین نیست اما انسان به عوض یافتن پنجره بهشت در طلب زر و سیم این دنیای فانی می‌باشد یافتن این پنجره تمامی های متصور را به پای فرد می‌ریزد خزانه بهشتی فقط طلا و نقره نیست بلکه گنجینه‌های روح یعنی آرامش رضایت و شعف را نیز با گوشودن پنجره بهشت به سوی فرد میفرستد. هیچکس تا لحظ ای که نظری بر فنه آسمانها و با زیبا آبهای روان و رنگ های دلاویز افلاک ماورا نیکننده باشد این را فهم نخواهد کرد. خدممند به انتخاب خودش آخر از همه قرار میگیرد. و همین است که باعث می شود او اولین باشد. و امیدند که با انکار خیش در زندگی از قیودات این سیاره و پایبست‌های جهانهای پایین نجات می‌یابد. این باعث غرور او نمی‌شود بلکه با خدمت به عتر در محله اول او زندگی پربارتری را تجربه می‌کند. پس آرمان مطلوب آرامش و خردی است که با جستجوی آن والا مقام و از طریق بیخیشی حاصل می‌آید. کسی که اهل طرح و نقشه و مملو از تدابیر باشد هیچگاه پنجاره بهشت را نمی گشاید و اصلا آن را نمی تسلیم، تقویت نیکی ها، میان روی و کنترل حواس، دانش شریعتی سبماد و اوصاف روح مثل پرستش حقیقت و پرهیز از خشم اصولی هستند که بایستی توسط یک اکیست واقعی شوند با تمرین مستمر شعف حقیقی است که فرد لذت حضور سوگماز را تجربه می کند احساس بینیازی کرده و از هویت اجتماعی می گرده او دیگر در ماورای اقلیم حواست تحتانی به سر می برد و در هوای کدگار متعال پر می کشد در هر درجه وصلی که باشند اگر چنان چه فرمول مقدس را برمراس سازند توسط اربابان کارما تنبیه میگردند. واصل حلقه که حقایق برتر را قبل از زمان مناسب به پویندگان وصل دوم آموزش دهد دچار رکودی طولانی خواهد شد واصل حلقه دومی که به همین سبت با کسانی که به وصل یک رفتیده اند رفتار کنند، برای مدت هفت سال از دریافت سهم دانش محروم شده و با انقضای این زمان به درجه پایین یعنی وصل یک متنظر میگرده فرقی نمی کند که فرد تا چه درجه ای وصل گرفته باشد اما چنانچه اسرار وصلش را به آنانی که از دانستن آنها دور نگه داشته شده اند فاش سازد، چشمه بصیرتش خشک و مهر خاموشی بر لبانش نهاده می شود تا دیگر نتواند در مورد درجات مختلف وصل چیزی به زبان آورد این اطرار در کتابی مکتوم نگهداری می و می کتاب عبد به همین صورت باقی بمانند همه کسانی که فکر می‌کنند این گفته ها منطبق با اخلاق اساسید اک در نظام باستانی وایراغی نیست نادانند خرد ندانش و یا نقطه نظر مستقیما از قلب سوگماد می‌آید. در واقع سوگماد است که وصل را از طریق کارگزار خیش ماهانتا استاد حق در قید حیات اعطا می کند. و اونیز نیز ها را به عنوان کارگزاران خود مأمور دادن وحشهای اک می نماید کسی نباید غیر از این فکر کند خرد خدا سوگماد به نقطن از اساتید ناشناف اک که در آن لوک مقیمند منعکس میگردد چون شما در این مرتبه از حیات به سر میبرید نمیتوانید نمی توانید حقیقی را تجربه کنید احوالات دنیوی همچون ابرهای متراکم سد راه خرد میشوند درست مانند خورشید که در زیر ابرها پنهان می شود می توان آنها را به بادهای شدیدی تشبیه کرد که سطح آب را موج می کنند و عکس آسمان زیبا را مخدوش می سازند یا به پیله پروانه ای می میماند که او را زندانی ساخته و یا به پوست میوهی شبیه است که از انتشار رایحه آن ممانعت می‌کند اما پروانه راه خود را از میان پیله می‌گشاید و به فضای بیکران پر می‌کشد و به دینگونه هوا، نور و آزادی را می‌فهمد روح همین چنین است موقعیت او در کالبد به شکلی است که اقتشاشات زمینی و بلواهای نفسانی آن را محدود کردند ولی اینها دائمی نیستند بعد از یک سلسله تولدهای مکرر آن شراره خردی که در آن است مجدداً بر افروخته می گردد. و نهایتاً با سعی و سبر و و مراقبه مدام در قطع تمامی پیوندهایی که او را برزمین زمین اند توفیق می آبد. و خوبیهای خیش را شکوفا می نماید و به درجه ای از خرد و سقل معنوی می رسد که او را به اصل خودش باز می و سپس با ترک قفص کالود خود بالاتر و بالاتر می و به مقام وحدت ابدی با سوگمات می رسد با احراز وصل پنج مکلف است که به اتکای مراقبه آینه خلوص و معنویت خیش را هرچه بیشتر او بایستی از میان چهار مرحله زیرین گذر نماید اولین مرحله سال است که دلالت بر پیوندهای مستحکم با جهان پایین دارد در این مرحله روح میخواهد با مسائلت ماهانتا استاد حق در غیر حیات خود را به جهانهای معنوی برساند و جایگاه خویش را در شأن حضور الوحیت بنا نهد او با سایر ارواحی که پیش از وی به مراتب ابدیت وصل شدهاند تماس میگیرد و از كالود زمینیاش فقط به عنوان ابزاری برای نسخهبرداری از تعالیم والایی که در این جهانهای حقیقی دریافت میدارد سود میبرد دومی سامی پیام که به معنای مجاورت است. با تمرینات مراقبعی و قصد توجه از موضوعات زمینی در یافت دانش و نظرگاه سوگماد برای آن عادی می شود. آن آبدیده شده و شروع به مشاهده عجایب و اعجازی می کند که از جنس این جهان نیستند. سوم سؤال و پیام یا مرحله تشابه است. در این مرتبه روح به تدریج کاملا شبیه اک می شود و در تمامی صفات آن صحیم می شود آن آینده را می و کائنات دیگر برایش راز نیست. چهارم هویت سای دیام است روح بالاخره با عشق تمام با مهانتا استاد حق در قید حیات یکی می شود این تحول آخری فقط و مرگ کالبد فیزیکی اتفاق می که به آن جداسازی یا انفصال کلی از تمامی قیود مادی میگویند گذر روح از این چهار مرحله را میتوان با مثالی گویا بیان نمود وقتی می خواهیم طلا را از یک توده مرکب استخراج نماییم اگر بخواهیم آن را در مرحله گداز قرار دهیم موفق نخواهیم شد. بلکه بایستی چندین بار این آلیاز را در بوتهای در معرض حرارت قرار دهیم و بتوانیم ذرات همگن را از ترکیب جدا کنیم و طلای ناب را به دست آوریم. دو گونه مراقبه عمومی در وصل پنج وجود دارد که عبارت است از سابدا سودماد و سابدا ماهانتا که به ترتیب به معنی ارتباط با سودماد و اتصال با آگاهی ماهانتاست. است در پرتاب پشتکار و تمرینات معنوی اک در تمامی مکانها اعم از خانه صحرا بیشزارها و جنگل است که مهدیس یا روحانی خود را برای افلاک رفیع بهشتی مهیا می‌سازد ارواح بخش اعظم اول پیندا جهانهای فیزیکی آندا اسیریالی و برهماندا ذهنی و ناخودآگاه بایستی فراموش شوند و هرگز مورد پذیرش و پیروی قرار نگیرند چرا که آنها فقط اشباهی از نیای پیشین بشریتند. یا از مرتبه فیزیکی گذشته اند و شاید هم در انتظار و برزخ مابین تناسخات خود به میبرند آنها در حلقه خیرتمندان قرار ندارند و شعهتشان هم دائمی نیست زیرا نمیتوانند آینده را ببینند و فقط دلمشغول تسخیر اشخاص در مرتبه فیزیکی میباشند میخارگان کوهنسالی که شبه آنها در طبقه اصیری یا تولکیاپاد است و از لذت رفع آتش شرب محروم گشتهاند سعی می شخصی را در پیندا جهان فیزیکی به دام اندازند و لذت شرب را به نیابت از او بچشند همین امر در مورد کسانی که در زمین در ستاد اخلاقی می نیز صدق می کنند. استاد حقیقی اکنکار کسیست که به تمرین بیوقفه خوبی ها خوب گرفته است اوست که با شمشیر خرد تمامی شاخ و برگ ها را پیراسته و ریشه درخت تنومند شرارت را به نور عقل سلیم خیش قطع کرده است او تلسم تاریکی را با همان ابزاری که او را محدود کرده اند باطل نموده است او با وجود آن که در حلقه محاصره نفس به میبرد، می برد بیان که فردیت و شعن خیش را ببازد با قلبی به سرسختی و برزندگی الماس با تجاوزات درونی و بیرونی روبرو می شود. او همان است که اشقی پدرانه برای تمام چلاها در سینه دارد و دوست و دشمن برایش مساوی هستند و به همه به طور یکسان شفقت و توجه خود را مبذول می‌دارد او کسی است که در نزدش طلا و جواهر هیچ فرقی با آهن و سفال ندارند و به زعم او هیچ کس عزیزتر از دیگری نیست او بیشترین توجه را بر رفع گرداب جهلی که انسان را در خود گرفته است قرار می‌دهد معماي الواح شریعت که سودماد نبایستی همچون کتب ادیان آسمانی در صورت ظاهر آن جستجو شوند و به جهت همین صورت پرستی و پوچیست که افشای آنها بر برقافلان و نااهلان مجاز نمی باشد بایستی بر شر یکی این گونه بنگریم روح از آغاز در کالبدی چکانیده شد همچون مغز بادامی که در پوشش چوبیش پنهان است به سانه که در پس ابرها مدفون گشته نزیر جامعی که بدن را مستور ساخته به مثابه تخم مرغی که در پوستش جای گرفته و به مانند ای که در داخل دانه به خواب رفته است بنابراین اکرا خالبد، پوشش چوبی عرهای تیره، جامعه، پوسته و دانه می باشد که آن را از محلکه دانش دنیاوی و چشمها و گوشهای نامحرم و ناپاک محسون ساخته است هر آنچه که بوده هست و بعداً خواهد آمد و تمامی آنچه که تا کنون گفته شده است تماما در شریعت کسودماد یافت می شود. اما کلمات و الفاظ این مکتوبات شریف گویای معنای درونی آن نیستند آنها فقط زمانی وصل به معنا میگردند که ماهانتا استاد حق در غیر حیات پوسته آن را شکسته و ابرهای تیره ای را که نور پرفروغ آن را متدر ساخته اند سازد یک مروارید است که در کف اقیانوس مدفون است مرواریدی که فقط پیدا کردن صدفش افاقه نمی کند. بلکه بایستی صدف را گشود و در را صاحب شد ای کسانی که, که از خواندن صحیفه مقدس شریعتی سود به خود میبارید در حالی که از دست هدایتگر ماهانتا مهانتا استاد حق در غید حیات بی بهره آیا اصلا میدانید از اولین حرف کدام کلمه بایستی قرائت آن را بیاغازید؟ هیچ از سر به ترکیب سه خصوصیت روح و مراتب نهگانه خبر دارید و آیا اصلا میدانید چه وقت حرف آخر اولین شده و اولین آخر گردند وای بر کسی که شأن اکرات ها به حد دانش بشری و موزعی از تناسبات لفظی متنزل نماید اگر واقعا اک همه چیز است پس ارزشی به مراتب فراتر از برداشتهای ظاهری خواهد داشت اگر دلالت این استعارات به همان معنی لفظی باشد در آن صورت در صحرای محشر آگاهی انسانی و قوانینی که منجر به محدودیت او گشتند گرفتار می آییم. ما فقط مجازیم که از این قواعد بر حسب شکل و مصداقشان استفاده کنیم اما ایک چنین نیست و تمامی جنبه از اسرار عمیق و معانی والایی یاتنده است هیچ چیزی نقطه آغاز ندارد و هیچ پدیده‌ای را مقطع پایان نیست همه چیز در حال تغییر و دگرگونی است زندگی و مرگ تنها وجوهی از دگردیسی می میباشند که حاکم بر کل مولکول‌های حیات‌اند از سیاره گرفته تا افلاک سوگماد و همچنین خود آن سوگماد متعال آن کسی است که همه های انسان را در احاطه خود دارد این های پنجگانه تحت کنترل روح و کلام آدمی هستند کلمات یا زائیده ذهن هستند یا به عبارت صحیحتر مناصب و سلسله اینا محدود از تجاربی هستند که از فاصله ای غیر قابل تصور در گذشته به لحظه حال رسیدند و راه خود را به اقلیم دوردست آینده می بوشایند. آنها شنیدنی هایی هستند که به ناشنیده ها متصلند اشکال متجلی شده و بلغوه های نشکفته روح می باشند که همه رشد کرده و با تکامل خود شکفته می شوند. پس واقعیت مطلق کلام نه در معنی لحظه حال است و نه به عنوان ابدالی در جهت انتقال از کار و ایدهها به وجود آمده است این همانند یک ملودیست که اگرچه دارای معنایی ژرف باشد لیک در کلام نیاید و در سایر اسباب تجلی نگونجد این همان کیفیت غیر استدلالی و گونگی است که عمق احساسات ما را متلاطم کرده و درونیترین هسته وجودی ما را تحریک می و ما را در برابر کسانی که با ایشان نسبت آشغانه و شغلی داشته و یا داریم به ارتعاش ما می ابداع زمان مبدع تاریخ بشریت است هر واجعی معادل صوتی وضعیت و تجربه درونی و یا بیرونی می باشد. یک نیروی خلاقه از این در این خط تجلی دستندرکار است که در پهنه زمان گسترده شده است و بر اثر این نیرو انسان توانسته است اشرف مخلوقات گردد تمامی دیدنی ها به نادیدنی ها و کل شنیده ها به ناشنیده ها پیبسته است محسوسات و تدلبته تصور شده ها به تصور ناشده ها همه به یک دیگر متصل می باشند نقاش، شاعر، خواننده و انسانهای خلاق معنوی آنان که در زندگی از طبعی تأثیرپذیر پذیر و حساس برخوردارند و همینطور ددیفین همه و همه از نقش اساسی سیمای استعاری کلمات و صداها در محسوسات و تجلیات مطلع هستند پس هیچ کدام علاقه مند به قالب ظاهری پدیده ها و خوردیا کلان بودن آنها نیستند ایشان بزرگی و منزلت را در کوچکی هم میبینند از طریق آنهاست که کلمه موجودیت بیرونی پیدا میکند و پوشش واژه و آوا تبدیل به محمل نیروهای اسرارآمیز خلقت فلغت میگردند از طریق ایشان است که دیدنی ها نماد و مظهر ذهن میشوند و محسوسات ابزار خلاقه یک شده و زندگی مبدل به جریانی امی تا عبدیت می شود حد اکثر خوبی در نوع بشر خضو و خشوع است درست همانند جریان آب انسان خوب یا پادشاه نیکسیدت نیز خود را ناچیز میشمارند. درست همانند جریان اک نتیجتا هدف او صح و آرامش است و با این خورسندی و آسایش گرداگرد او را دربر میگیرد. از مردم دیارش گرفته تا روشن فکران، مهربانان و خوبان و خلاصه همه دنیا را لمس میکند. همه بایستی به حد کفایت قدرت کنترل بر ماهیت حیوانی خود را داشته باشند تا خلوص قلب را حفظ کرده و هرگز از مسیر اک منحرف نشدند دست با انکار خویشتن میتواند خیش انضباطی خود را استمرار بخشد حالتی که او را قادر می‌سازد که بیچ عرش داشت عشق ورزیده و فضائل را تمرین کند و نهایتا به درک کل درآید او بایستی بیان که قصد تملک بر دیگران را داشته باشد زندگی خود را وقف ایشان نماید او میتواند شاه جهان باشد البته پادشاهی عادل و نه این چیزیست که ایک از همگان میطلبد آیا کسی می‌تواند چارچوبی معین را برای ایک تعریف نموده و بگوید که این است؟ آن مثل مهور اصلی چرخ می همچون مرکزی که پره های چرخ را به هم پیوسته و مثل میله تعادل چرخ ها بی است این مرکز سوراخی توهید در محور گردش چرخ است، اما همین مکان توهی پنجره ای است که حتی با ویران گشتن دیوار دست نخورده میماند و موقعیت خود را حفظ می کند. اکم به همین می ماند. آن نیمه خالی لیوان است. آن یک ماتریکس ساختاری و غیر قابل انکار است و هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند بدون آن. عمل کرد داشته باشد ماهانتا استاد حق در قید حیات اسامی دیگری نیز دارد او خدامرد وای گرو نوردهنده محافظ فقرا پادشاه بهشت منجی بشریت سپر بلای شیطان و مدافع مؤمنین است او حقیقت برتر و نیروی یگانه در تمامی کائنات خداست کسی نمیتواند به گزندی رساند مگر آنکه خودش اجازه دهد زیرا تمامی آنچه که بر او رود، مشیت عک است و با رضایت کامل اوست او هرگز به دنبال قدرت نیست چون قدرتمند است در پی عشق نیست زیرا خود عشق او هاکل مقدور در پس پرده میماند و در امور این جهان مداخله نمی کند مگر از او تقاضا شود. سوکان هدایت کل حیات در دستان اوست و ابدا نه وابسته به مقتضیات اجتماعی انسان است و نه در ارزش هایی است که مردم به خاطرش با هم جنگیده و یکدیگر را میکشند. اک برای اکثریت نادیدنی، ناشنیدنی و نامحسوس است بایستی آن را به همین گونه پذیرفت آزمونی برای تعیین حضور و یا عدم حضورش وجود ندارد و قابل اندازهگیری هم نیست نه حضورش نشانی دارد و نه غیابش خلق و تیرگی بر جای میگذارد. آن با اختصاصات و معیارهای بشری متجانس نمی باشد در کنه همه پدیده ها نوعی ایستایی و سخون موج میزند. آنجا فراخنای حضور جوهره ذات حیات است آستانی که تقدیر از آن سرچشمه میگیرد و بی علم آن ذات خیش جاودانه بشر همواره نسبت به آن کور است و برابر این به جای آن که در همه چیز خیر و خوبی را ببیند شر و اهریمن را مسبوع می گردد. زمانی که چلا به شناخت این ذات درونی میشد تا بعد خود را بر درگاه پادشاهی کبیر میبیند که منتهای نیکیش را با غنیترین زندگی به وی اعطا میکند و در نهایت همه زوایای وجودش را خدایگونه مینمایاند آن اک است که درون او کار می کند ممکن است که بمیرد اما میداند که محو نخواهد شد زیرا باور کرده که دار بقا فراسوی گور است اک همان است که هست، غیر قابل تملک و غیر مادی است و موضوعات زندگی بیرونی در عرض آن قرار می‌گیرند. اک در سرسَر قامت ابدیت گسترده است، اما از ازمنه باستان تا کنون اک آن منشأ ماهیات تحت عناوین بیشماری معرفی شده است. از کجا بدانم که آن را می‌شناسید؟ چگونه می‌خواهید وصفش کنید؟ آن فقط با دید باطنی اشراق و تجربه شخصی شما با آن جاودانگی که به آن حقیقت معنا میگویید قابل درک است اگر چلا به استاد حق در قید حیات توکل کند باورش نسبت به اک قویتر می میشود امید موفقیت او در اک در گروه قدرت آن است اگر بخواهد آن را ترک گوید در واقع از خودش دور افتاده است همه چیز در کائنات سوگماد چشمه وجودشان را از اک میگیرند و بر این مبناست که مهانتا استاد حق در غیر حیات سمبل کل بشریت است او خدا است که در زمین و آسمان‌ها ها همه ما را با اک پیوند میدهد وفاداران اک بر جهان پیرامون خود تأثیر می‌گذارند. زیرا خشت بنای هر دو جهان یک چیز است یقین در قلب یافت می شود در هم و همی محصول جهانهای بیرونی است پس بر خود بنگرید و ببینید که زندگی در کدام این وضعیت می تواند از آن شما برشد همه چیز بستگی به ارتباطتان با اک دارد به خصوص شکل تجلی صفات که قالبی متناسب با ذوق و علاقه و یا تلاش به خود میگیرد این باعث تعمق و توجه چلا به خانه، شهر، ملت و جهانش میگردد کسی که در خیابان قدم میزند به واسطه آنچه که از دریچه ایدئالهایش به ظهور میرساند مجرای اک میباشد و آن را در پیرامونش منتشر میسازد همین که قدوم خود را در طریق اک مستحتم مینمایید مبنا و معیاری برای قضاوت و سنجش همه انسان ها می شوید. اگر قرار باشد که این جهان روی آسایش ببیند و توسط اک تسخیر شود بایستی دنیا را به حال خود گذاشت. در نتیجه آنچه که باقی می ماند فقط اک است. ثابت شده است که انسان هرچه بیشتر تلاش می کند دنیای ظاهر هم بیشتر دامنگیر او می شود با اعمال و تصمیمات اتخاذ شده از جانب بشر جهان به سوی شر پیش می روید. پس پس آن است که آن را به کلی رها کنیم اگر چونین کنیم آزاد شده و طبیعتا به آن سادگی و صداقت بدوی باز می گردیم این آرزوی اک برای کل بشریت است تاریخ اکنكار دانش باستانی سفر روح در خون بشر است اما او دوچار جهل شده و توسط ادیان اصولی تحت فشار قرار گرفته و هیچ کاره شده است. آنها در جستجوی قدرت و بهره‌وری‌های مادی هستند. روحانیان و حکام ستمگری که با اهرم وحشف و مرگ حکم میرانند، میکوشند تا دیدگاه آنها را تحت سلطه خیش آورند. تا کسی فرزندی نداشته باشد نمیتوان او را پدر نامید پس یک از مذاهب نمیتوانند کشیش خود را پدر بخوانند. فقط خدامرد، مرد، مهانتا، استاد حق در قید حیات موقعیت پدری را احراض کرده و میتوان او را بابا یا با مردم نامید اما او حتی این عنوان را نیز بر خود نمی پدبیرد. زیرا میداند که همه با هم برابرند و نبایست که هیچ کس را برتر از دیگری در نظر گرفت او خودش هم در حیات انسانی است پس بل اجبار در گیر قوانین این جهان می باشد شر و پلیدی قدرت صدمه زدن به چلای را ندارند او دور از دست این کیفیات است زیرا ماهانتا استاد حق در قید حیات به سان مرغی که در حین پرواز شاهین در آسمان پرهای خود را بر روی جوجه هایش می امور معنوی و انسانی او را کنترل می کند توسط پیروان مذاهب دوگم مورد حمله قرار می گیرد زیرا هیچ کس آن را نمی فهمد. این کچفهمی مربوط به درک معنوی است فهم ذهنی همدردی اعتدال و توازو در انسان مادی دیگرها غایبند و چون این فقدانی برای نژاد بشر مهلک است، عشق و همدردی است که چلارا را به ماهانتا استاد حق در غیر حیات وث می‌کند. کسی که تسلیم و بندگی را تمرین کرده باشد میتواند هم در اینجا و هم در جهانهای نامرئی دوام بیاورد این انصر است که باعث میشود ازدواجها سالها مستحکم بمانند دوستیها به درازا کشند و ملت‌ها را با یکدیگر آشتی می‌دهد و روح را در لنگرگاه ابدیت استقرار می‌دهد عدم تسلیم عاقبتش مرگ است سربازی که نمیداند چه موقع یورش برده و چه وقت تسلیم شود هیچگاه پیروز نمی‌شود زورمداران و طالبان قدرت از جایگاه خود واژگون می‌شوند زیرا تسلیم را تمرین نمی‌کنند اما آنان که با تسلیم زندگی میکنند بر فراز ایشان اوج میگیرند من را که دیده ام و قرار بوده به شما عرضه بدارم گفتم فقط آنان که در جهانهای بالا مقیمند میدانند که کدامین حقایق و خرد خدایی را بایستی بر گوش جانتان بریزند من مجرای ناقابلی هستم که ایشان از این طریق با شما هم کلام می شود